صفحه 1037 پس از آن که سلطان از اسب سهرامیز نامی برد شاهزاده گفت از این اسب توان در معالجهی شاهزاده خانم استفاده کرد نظر به اینکه اسب وسیله پرواز و انتقال او بوده است که جنبه سهرامیز داشته است لذا همین حالت سهرامیز بودن هم اثری روی شاهزاده خانم گذاشته که من می توانم آن را از شاهزاده جدا سازم و او را به حال عادی خود برگردانم و چنانچه سلطان اجازه دهند اسب سهرامیز را در میدان بزرگ شهر که مقابل کاخ سلطنتی است بیاورند و تمام اهالی شهر را هم خبر دهند تا برای دیدن نمایش بسیار شگفت‌انگیز و بی سابقه در سراسر سر میدان گرده هم آیند و از آن لذت ببرند. ضمن دستور فرمایید زیباترین و گرانترین لباسها را به شادزاد خانم بپوشانند. و بهترین جواهرات و زیورالات پادشاهی را که در خزانه دارید به او بیاویزند. سلطان انجام این دستور را خوشحال کننده ترین عامل برای خود تلقی کرد. زیرا امید بهبودی شاهزاده و کامیابی خود را احساس می‌کرد. روز بعد اسب سهرامیز را به میدان بزرگ مقابل کاخ سلطنتی آوردند و جورتیان در سراسر شهر جور زدند که در میدان مقابل کاخ سلطنتی بی سابقه ترین و بزرگترین نمایش ها اجرا خواهد شد و مردم می برای تماشای آن در آن میدان اجتماع نمایند بعد از انتشار این خبر مردم به قدر ازدهام کردند که گارد سلطنتی ناچار شد برای برقراری آرامش و تامین محل خالی برای نمایش عصب سهرامیز مداخله کند سلطان و تمام اشراف در جایگاه های مخصوص جای گرفتند آنگاه شاهزاده خانم بنگال که به فرمان سلطان گروهی از ندیمه ها او را همراهی می کردند به وسط میدان در کنار اسب سهرامیز رسیدند و با کمک آنها بر اسب سوار شد و پاهای خود را در رکاب ها جای داد سپس شاهزاده ایرانی به میدان آمد و دستور داد بزرگی را که در آن آتش افروخته بودند در اطراف اسب روی زمین بگذارند آنگاه شاهزاده از جیب خود گردی بیرون آورد و در آتش ها ریخت دود غلیظی چون ابر به آسمان برخواست. به طوری که شاهزاده خانم و شاهزاده ای ایرانی دیده نمیشدند. آن وقت شاهزاده کلماتی گفت که کسی چیزی از آن نفهمید سپس شاهزاده سه دور پیاپی پی با اسب خود دور میدان گشت و در حالی که به سوی آسمان پرواز میکرد، سخنانی گفت که به طور وضوح به کوچه سلطان رسید مطلبی که شاهزاده گفت چنین بود ای سلطانی کشمیر هر زمان که میخواهی با شاهزاد خانومی که به تو پناه آورده است ازدواج کنی، باید قبلا رضایت او را به دست آورده باشی. برین ترتیب، شاهزاد فیروز شاهزاد خانم را نجات داد و در همان روز به پایتخت ایران رسیدند و درست در میان فضای وسیع کاخ شاهنشاهی از به خود به زمین فرود آورد و به حضور پادشاه رفت و پدر و تمام اعضای خاندان سلطنتی را با حضور خود چاد کرد. و مقدمات جشن ازدواج را تدارک و جشن بسیار با شکوهی برپا شد. اعیان و بزرگان کشور در این جشن شرکت کردند. بعد از پایان جشن، هیئتی به سرپرستی فرستاده ویژه شاهنشاه به بنگال رفتند و او را از پیوند زنوشویی و همچنین پیوند دو کشور با دیگر آگاه ساختند. شاه بنگال هم وقوع این ازدواج را افتخار بزرگی برای خود و کشورش به شمار آورد. و موافقت و شادی خود را با آن اعلام نمود سرگذشت شاهزاده احمد و بانوی پریزاد در روزگار قدیم پادشاهی در هندوستان میزیست که با آرامش به سلطنت خود ادامه میداد و در دوران پیری شاد بود که سه فرزند پسر دارد و آنها پرهیزگار و دارای استفاده پسندیده هستند نام بزرگترین فرزند حسین و دومین فرزند علی و سومین احمد بود پادشاه و برادر کوچکی داشت که یک دختر داشت و نامش نورالنهار بود. این برادر کوچکتر سلطان مدت کوتاهی بعد از ازدواج به جود زندگی گفت و شاهزاده خانوم نورالنهار را در سن خردسالی سالی از خود به یادکار گذاشت. سلطان که رابطه دوستانه و سمیمانهی با برادر خود داشت نورالنهار را در قصر خود بزرگ کرد و او را سواد آموخت و مانند فرزند خیش با او رفتار می کرد. و آرزو داشت این شاهزاده خانم در آینده خوشبخت شود وقتی نور و نهار به سن قانونی رسید سلطان به او پیشنهاد کرد تا با یکی از شاهزاده های کشورهای همسایه پیوند زن ببندد ببندد. ولی فهمید هر سه فرزندانش آشغانه خواستار نور و نهار هستند فکر موضوع ازدواج را جدی تر باید گرفته شود مشکل کار سلطان فقط این نبود که علاقه فرزندان او به نور و نهار مانع از پدید آمدن پیوند دوستی بین کشور هندوستان و یکی از کشورهای همسایه می گردید بلکه دشواری اساسی این بود که چگونه میتوان بین سه برادر که هر سه علاقمند به نور نهال هستند یکی از آنها را برگزید مگران که دو برادر کوچکتر به نفع برادر بزرگتر کنار روند و یا اینکه نور و نهار خود شخصا یکی از آن را انتخاب نماید. سلطان بهطور جداگانه هر کدام از فرزندانش صحبت کرد. و اشاره کرده که هر سه نفر نمی توانند همسر نور و نهار شوند و باید راه حل آقلانی برای این مشکل پیدا کنند. سرانجام هر سه فرزند را نزد خود فراخواند و به آنها گفت: عزیزان، من هر سه شما را به طور مساوی دوست دارم و نمیخواهم با برگزیدن یکی از شماها برای ازدواج با دختر عمویتان نور و نهار بین شما برادران ایجاد نفاق کنم و هیچ کدام هم بر دیگری برتری ندارید. دلم میخواهد سمیمیت بین شما باقی میماند. من مسلحت دیدم که برای ادامه یگانگی و برادری بین شماها ها بهترین حل آن است که هر کدام از شماها دوگانه دو به کشورهای گوناگون سفر کنید و بکوشید تا کمیابترین و نادرترین اشیاء جهان را که مانند نداشته باشد پیدا کنید و آن را نزد من بیاورید. من آنها را با یکدیگر مقایسه می کنم و صاحب نادرترین تحفه کسی خواهد بود که میتواند با نو رو نهار ازدواج کند ضمن ی سفر و پول کافی هم برای خرید تحفه در اختیارتان میگذارم نتیجه این سفر این است که شایستگی و هوش خود را آزمایش کنید و اوضاع دنیای خارج هم آگاهی بسیار به دست آورید هر فرزند که همواره تسلیم رأی پدر بودند این بار هم نظر او را فسندیدند و زمنان به خود دلخوشی می دادند که با ارائه نادرترین تحفه نور و نهار را هم به دست خواهند آورد بنابراین موافقت خود را اعلام و از پدر اجازه مرخصی گرفتند و لوازم سفر را فراهم آوردند و قرار گذاشتند فردا صبح همگی کاخ سلطنتی را ترک کنند هر به جامعه بازرگانان را دربر کنند و یکی از افسران محرم را هم به صورت غلام همراه برداشته سوار بر اسب شده و با تجهیزات لازم از دروازه شهر خارج شدند و به اولین ای که رسیدند شب را در آنجا گذراندند و با یکدیگر توافق کردند مدت سفر و کاوش آنها یک سال باشد و بعد از یک سال باز به همین مسافرخانه برگردند و هر کدام که زودتر مراجعت کند در همین مسافرخانه بماند و منتظر دو برادر دیگر باشد در این محل راه به سه شاخی تقسیم می و هر یک از برادران یکی از آن سر را برگزید و با یکدیگر خداحافظی کردند و روانه مقصد نمعلوم می شدند شخصاد حسین برادر بزرگتر که درباره شکوه و قدرت و ثروت و توانایی حکومت سلطنتی باسانغرور و توفهه کمیاب و نادر آن داستانها شنیده بود به آن سو از کار گردید و پس از ماها مسافرت همراه کاروان گوناگون، از میان دشتها و کوه‌های خوش، ماشای زمین‌های آباد سرسبز گذشت و سرانجام مرکز کشور بایسونگور که سلطان در آنجا اقامت می‌کرد وارد شد و در مسافرخانه‌ای که مخصوص بازرگانان خارجی بود، مسکن گزید. در آنجا متوجه شد در این شهر بزرگ چهار محله مخصوص وجود دارد که بازرگانان خارجی کالاهای خود را در آنجا می‌فروشند و دکان‌های خود را در آن محل انتخاب کرده‌اند. در مرکز شهر هم محل بسیار وسیعی بود که قصد سلطنتی در وسط آن قرار گرفته بود. شاهزاده حسین به یکی از این محله ها وارد شد. در این محله خیابان بندی منظم و زیبا با دکان های قرینه و هم اندازه به چشم میخورد و در هر یکی از خیابان‌ها دکاندارها کالاهای مشابه به مشتری ارائه میکردند و در هر خیابان نوعی کالا و یک کارهای دستی به فروش گذاشته بودند. این قفد از شهر بسیار جالب توجه بود به طوری که شاهزاده حسین نتوانست از تصوین خودداری ورزد اینجا منطقه یه وسیعی بود که خیابانهای متعدد از آن میگذشت و برای ایجاد محیط سایهدار و محفوظ از حرارت آفتاب سقفی در همه جا زده بودند بسیاری از مغازه ها بهترین پاچه های هندی را ارائه میدادند که ترهای زیبایی از انواع حیوانات و مناظر طبیعی و گلها و درختان را نمایان می‌ساخت. و پاطه های ابریشمی و زربفت بلدار ساخت ایران و چین و سایر کشورهای جهان و همچنین ظروف چینی کشورهای ژاپن و چین و پاطه های زری از ایران و انواع قالی ها و فرش های ایران که در نهایت زیبایی و مرغوبیت ارزیده شده بود هر بیننده را به شگفتی و تحسین وامی داشت وقتی شاهزاده حسین دکان زرگرها و جواهرسازی هندی را دید که تکارهای کارهای جالب با طلا و نقره ارائه داده اند. کاملا شیفته هنر و زیبایی و ظرافت آنها گردید و چشمان او در برابر درخشش مرواریدها، الماسها و سنگ‌های زمرد و سایر جواهرات خیره شده بود. این کشوری بود که همه اهالی آن زن و مرد به طلب و جواهر علاقه فراوان داشتند و غیر از طبقه برهمنان و پیشوایان که زندگی اندوه‌طلبانه ای داشتند. همه هندیها زیر به گردن و دست و گوش و پای خود داشتند. از دیدنی‌های دیگر برای شاهزاده حسین گل فروشی های بسیاری بود که در هر طرف دیده شد زیرا هندی‌ها به گل و به ویژه به گل سرخ علاقه بسیار دارند و بدون دست گل در دست و یا گربند بر سر از خانه‌های خود به کوچه می‌روند و بازرگانان هم در گلدان‌های متعدد انواع گل‌ها را جای می‌دهند به طوری که فضا عطرین و خوشبو می‌شود. بعد از اون که شاهزاده حسین سراسر سر این منطقه را زیر پا گذاشت و همه خیابان ها را گردش کرد و دکان ها و گل فروشی ها را دید و فهمی که چه ثروت فراوانی در این کشور وجود دارد خستگی برو چیره شد. اتفاقاً بازرگانی او را به دکان خود تعارف کرد و او هم که آمادگی داشت دعوت او را را شد و در دکان او نشست. هنوز مدتی نگذشته بود که فروشنده دورهگردی را دید قایچه بردوش دارد. و آن را در برابر سی سکه یه عرضه می کرد شاستاد که ظاهر قالیچه و اندازه و طرح آن را دید تعجب کرد چرا فروشنده چنین قیمتی گرانی برای آن مطالبه می کند فروشنده پاسخ داد قیمت این خالیچه به خاطر امتیازی است که دارد وگرنه یعنی اندازه و مرقوبیت آن اساسا ملاک قیمت آن نیست خاصیت این قالیچه آن است که وقتی روی آن بنشینید میتوانید هر مقصدی را که مایل باشید و نیت کنید این قالیچه فرار شما را در یک چش به هم زدن به آن مقصد میرساند و در ضمن هیچ مانعی نمیتواند از حرکت آن جلوگیری گیری کند سخنان فروشنده قالیچه شاهزاده را بیاد یاد سخنان سلطان انداخت که سفارش کرده بود تحفه بیاورید که نزدین نداشته باشد و پیش خود فکر کرد این قالیچه می تواند همان تحفه بیمانند باشد شاهزاده به فروشنده گفت از کجا مطمئن باشم که چنین خاصیتی در این قادیشه نهفته است؟ فروشنده پاسخ داد؟ آنچه گفتم واقعیت دارد و می توانید آزمایش کنید تا چنانچه خلاف گفته باشم چیزی نپردازید؟ و اگر واقعیت داشت آن وقت سی سکه یه طلا در مقابل آن به من بدهید. شاهزاده پیشنهاد کرد اگر گفتی شما درست درت به شما چهل سکه تلا به اضافه انعامی هم به خودتان میدهم؟ به پیشنهاد فروشنده و موافقت صاحب دکان شاهزاده و فروشنده قالیچه به اتاق مجاور رفتند و بر روی قالیچه نشستند و شاهزاده نیت کرد که به اتاق خود در همان مسافرخانه بروند در یک چشم به هم زدن شاهزاده خود و فروشنده را در همان اتاق مسافرخانه یافت آنگاه چهل سکه طلا برای قالیچه و 20 سکه طلا هم به عنوان انعام به فروشنده پرداخت و قالیچه را گرفت خواستار از اینکه به محض ورود به این کشور توانسته بود تحفه نایابی چون این قالیچه به آورد، بینهایت خوشحال شد و با خود گفت بدون تردید نور و نهار متعلق به خودم خواهد بود. قطعا دو برادرم تحفه هایی به این خوبی که یارای برابری با را داشته باشد نصیبشان نخواهد شد. اگرچه چه جاسادی حسین با تحفه که به دست آورده بود، می توانست به میادگاه خود که با برادرانش قرار گذاشته بود بازگردد، اما مایل بود که دیداری سلطان کشور به عمل آورد و درباره قوانین و فرهنگ و نیرومندی حکومت آن اطلاعاتی به دست آورد و روی این عرض تصمیم گرفت چند ماهی در این شهر بگذراند تا نظر خود را ترمین کند. شیبه سلطان این کشور چنین بود که هفته یک بار اجازه می داد تا بازرگانان خارجی مقیم کشور با او ملاقات کنند و به گفته و تبادل نظر بپردازند. و شاهزاده حسین که از هر جهت به ویژه از لحاظ شکل و وقار و هوش و سواد برطری محسوس نسبت به بازرگانان داشت توجه سلطان را به سوی خود جلب کرد و هر هفته سلطان با شاهزاده صحبت می کرد و درباره حکومت و شخص سلطان هندوستان و نیروی دولت و ثروت سرزمین هایی وابسته اطلاعاتی از شاهزاده می گرفت بقیه اوقات را صرف گردش و سیاحت در جاهای دیدنی در داخل و خارج شهر می کرد و یا به بازدید از بناها و اشیاء قیمتی و یا پرستشگاه‌های هندیان که های خود را در آنجا گذاشته بودند می پرداخت از جمله بتی در آنجا بود که قامت آن دو برابر انسان معمولی و از طلای ناب بود و دو عدد یاغوط بزرگ به جای مردمک چشم در آن آنجا داده بودند. هنر این مجسمه سنگین سنگین‌وز، تمام طلا، این بود که از هر نقطه ای که به آن نگاه می کردید، چشم‌های های مجسم هم شماره نگاه می‌کرد. تمام جهانگردان برای تماشای این بود به این معبد بزرگ روی می‌آوردند. علاوه بر این در وسط جلگی پهنوبر دهکده معبدی وجود داشت که با ده تاق مختلف دیده می‌شد که به باقی از گل سرخ منتهی می گردید و علاوه بر این انواع بهترین گل نمونه را در آنجا پرورش می‌دادند و برای جلوگیری از ورود چهار پایان به انگلستان زیبا و رنگارنگ. اطراف آن را با دیوارهی به بلندی یک زرع محصور کرده بودند در میان این جلگه ایوانی از سنگ یک پارچه دیده میشد شود که درست در مرکز آن معبدی بنا شده بود و گمبدی در بالای آن نمایان بود که ارتفاع این معبد پنجاه زرع می رسید و از فرسنگی دیده می درازای این معبد سی زرع و عرض آن بیست زرع بود این بنا با مرمر قرمز ساخته شده و سطوح خارجی آن کاملا سیغلی و صاف بود در درون گنبت سه ردیف تابلوهای نقاشی زیبا کار هنرمندان بزرگ به چشم میخورد و در تمام معبد مجسمه‌ها ها و تابلوها از پایین تا بالا را پوشانده بود و هیچ فضای بدون نقاشی و مجسمه دیده نمیشد هر روز صبح و همچنین بعد از هر غروب آفتاب تشریفات ویژه‌ای در این معبد انجام می‌گرفت که همواره با موسیقی و رقص و آواز همراه بود کاهنین معبد و ساکنین محلی از هدایا و نظرهایی که مردم به معبد تقدیم می‌کردند زندگی خود را تأمین می‌نمودند زائرین از دورترین نقاط مملکت برای ادای نظر نیاز خود به این معبد می‌آمدند و معاش روزانه خدمتگزاران معبد را فراهم می‌ساختند شاهزاده حسین تماشاگر یکی از بزرگترین جشن‌ها بود که در سال فقط یک بار در حضور پادشاه برگزار میشد و در آن جشن استانداران تمام کشور و فرماندهان مناطق نظامی و فرمانداران شهرها و قضات بلندپایی کشور و همچنین کاهنین بلند آوازه نامی کشور حضور و هم میرساندند. و حتی بعضی از این شخصیت ها از فاصله دور که لازمه آن چهار ماه مسافرت بود به این مرکز میآدند. این جمعیت بیشمار در جلگه پهنوبری گرده هم آمده و صحنه بسیار باشکوهی را پدید می آبردند. در وسط این جلگه داربست عظیمی که از سطح زمین مقداری بالاتر بود، نه ردیف نیمکرد جای داده بودند که از یک به بنای زیبایی منتهی می شد. این محل برای شرکت شاه و درباریان و خارجیانی که هفته یک بار شرفیاب می شدند اختصاص داده بودند، داخل آن را به وضع شکوهمندانهای تزئین کرده و نمای بیرونی آن را با منظرههای دلانگیز نقاشه کرده بودند که انواع حیوانات و پرندگان و حشرات زیبا حتی مگسها را به صورت و رنگامیزی کاملا طبیعی و بسیار استادانه جلوهگرمی ساخت سه داربست دیگر که در سه سوی دیگر برپا کرده و چهار یا پنج نیمکت در آن جای داده بودند به طور مشابه نقاشی شده بود اما آنچه بیش از هر چیز توجه بیننده را به خود جلب می کرد و سبب حسرت می شود. تغییر صحنه ها بود که ساعت به ساعت صورت می شاهزاده حسین از اقامت خود در این شهر و دیار بسیار شاد بود و سرگرمی های گناگون لذت فراوان می برد و درش می خواست تا هنگامی که وعده دیدار با برادرانش فرا نرسیده به سکونت خود در آنجا ادامه دهد. ولی علاقه او به نور و نهار و شوق دیدار او وی را بیتاب دا... بی کرده بود به وی جان که تخفه شایسته و بیمانندی چون غالیچه پرنده هم برای به آوردن او فراهم کرده بود بنابراین نیت بازگشت به کشور خود را به صاحب مسافرخانه گفت و حساب کرایه الیام را پرداخت و کلید اتاق را هم پشت در اتاق گذاشت و پس از آن در را بست و روی قالیچه قرار گرفت و افسر محافظ خود را هم که به عنوان قدام با خود همراه آورده بود در کنار خود روی قادیشه جای داد و نیت کرد و قادیشه به پرواز درآمد و او را به همان مسافرخانه ای که با برادران خود وعده دیدار داشت رسانید حال ببینیم شاهزاده علی برادر دومی که قصد داشت برای به دست آوردن توخه کمیاب به ایران سفر کند چه اقدامی کرد شاهزاده علی پس از خداحافظی با دو برادر دیگر همراه کاروان راه افتاد و بعد از چهار شبانه روز به شهر شیراز که پایتخت پادشاهان ایران بود رسید در راه با چند بازرگان جواهر آشنا شد به مسافرخانه وارد شد و بازرگانان به گشودن بارها و بیرون آوردن کالاهای خود شدند اما شاهزاده علی که قصد تجارت نداشت و فقط در جستجوی پیدا کردن تحفه نایابی بود لباس پوشید و از مسافرخانه خارج شد و به بازار معروف و سرپوشیدهٔ شیراز رفت در آنجا به گردش و تماشای دكانهای مختلف پرداخت در این بازار وسیع و طولانی ستونهای سنگی بیشماری دیده میشد که در فاصله آنها دكانهای جواهرسازی و زرگری و نقرهکاری فراوان بود در حقیقت این قسمت را بازار زرگرها و طلافروشان تشکیل میداد کارهای بسیار ظریف و زیبا توسط بهترین استادان جواهرساز در این دكانها ارائه شده بود که هر بیننده را به سوی خود میکشانید. در کنار این بازار دکان‌های قماش و پاچه های ابریشمی و حریر و انواع پارچه‌های زری و بافته شده از بوده طاو و نقد موجود بود. علی همه این دکان‌ها را با دقت و علاقه از زیر نظر گذراند و در دل خود این همه زیبایی هنر را تحسین می‌کرد. دلالان گوناگون با صدای بلند در رفت آمد بودند و کالاهای صاحبان کالا را معرفی می‌کردند. و نمونه از آن را در دست خود ارائه می دادند چشم علی به دلالی افتاد که لوله استوانی شیخ ساخته شده از ارج فیل در دست دارد و دو طرف آن استوانه با آینه زینت یافته و دلال آن دستگاه را در مقابل سی که یه ارائه می کند علی آن را صدا زد و از او پرسید فکر نمی کنی این قیمت برای چنین چیزی گران است دلال پاسخ داد شما هر بخواهید را که کنید؟ می توانید در این آینه ها ببینید و این دستگاه جام جهان نما نام دارد و این قیمت در مقابل چیزهایی که نشان می دهد بسیار هم ارزان است. علی گفت اگر این جام جهان نما گونه باشد که تو می گویید حاضرم گرانتر از سیسته که هم به آنگاه برای آزمایش علی نیت کرد که پدر خود پادشاه را ببیند. فورا در آینه آن دستگاه پادشاه را دید که بر تقش شاهی نشسته. و مشاورین او هم در مقابل او قرار اند. بعد برای نور و نهار نیت کرد و فوراً چیزه او را با خوشویی در خوشحالی انجام نمایان دید. این نمونه کافی بود که شاهزاد علی تصمیم به خرید جام جهان نما بگیرد. زیرا با خود فکر که هیچ توفه ارزنده تر از این جام نخواهد بود و اگر سستی در خرید آن به خرج دهد، آن را از دست خواهد داد. در این هنگام دلال گفت آخرین قیمتی که مشتری به او پیشنهاد کرده چهل سکه طلا است. شاهزاده علی باووال موافقت کرد و به اتفاق دلال به مسافرخانه رفت تا بهای جام جهان نما را به او بپردازد. در آنجا سکه ها را شماره کرد و به دلال داد و جام را گرفت. شاهزاده از این معامله بسیار خوشنود بود و اطمینان داشت که هیچ تحفه در دنیا به این اندازه با ارزش و نخواهد بود. آنگاه با شوق فراوانیت کرد دربار بار با شکوه شاه ایران و دیدنی های اطراف شهر شیراز و بناهای تاریخی را تماشا کند و تا روزی که کاروان آزم هندوستان آماده شود شاهزاده علی با این جامعه جهان نما بسیاری از نقاط جهان را تماشا کرد سرانجام کاروان رسید و علی به همراه کاروان خود به مسافرخانهی که وعدی ملاقات حرس برادر بود رفت در آنجا خوشبختان شاهزاده حسین تازه وارد شده و از دیدن برادر خوشحال شد و هر دو در انتظار شاهزاده احمد باقی ماندند. شاهزاده احمد که به سوی سفرقند جه شده بود، بعد از ورود و اقامت در مسافرخانه‌ای به بازار شهر رفته و در آنجا دلالی را دیده بود که سیب مصنوعی را به قیمت 35 سکه طلا می‌فروخت. شاهزاده احمد خاصیت آن سیب را پرسیده بود و دلال پاسخ داده بود هر بیماری که دچار بیماری درمان ناپذیر گردد و یا مبتلا به اون و یا کسالت ها و بیماریهای برخین گردد با بوییدن این سیب فورا بهبودی مییابد و یا اگر کسی در حال مردن باشد چنانچه این سیب را بگوید تندرستی کاملش را باز مییابد و از مرد نجات پیدا میکند شاهزاد احمد پیش خود گفت بهتر از این داروی شفابخش چیزی در دنیا وجود ندارد و این همان ای است که پدرم پادشاه در جستجوی آن است. آنگاه شاهزده احمد گفت چگونه مطمئن شوم آنچه درباره این سیب میگویی واقعیت دارد. دلال پاسخ داد: همه مردم این شهر از خاصیت این سیب آگاهی دارند و اگر این سیب دارای جنی خاصیتی نبود تا خونون تعداد بسیاری از بیماران به حاقت رسیده بودند. این سیب محصول پژوهش و مطالعات مرد دانشمندی است، که تمام عمرش را در راه تحقیقات علمی و پزشکی صرف کرده و خواص کلیه گیاهان و میوه ها و مواد مدنی و ترکیبات خواص آنها را دقیقا مورد آزمایش قرار داده و سرانجام توانسته این سیب را که ترکیبی از مجموع اصاره ها و ترکیبات طبیعی و مدنی آنهاست بسازد اما این دانشمند قبل از که فرصت استفاده از این سیب را به آورد، به جود زندگی گفت و همسر و چندین فرزند خوردسال خود را بدون آنکه چیزی از مال داشته باشند تنها گذاشت. چون تمام ثروت خود را در این راه هزینه کرد و همسر او روی نیازمندی این سیب را فروخته است. در این هنگام مردم رفته رفته دور شاهزاده و دلال اجتماع کردن و حرف هایش کردند و حرفهایش را تایید کردند و یکی از آن میان فریاد کرد کسی می میشناسم که بیماری درمناپذیری دارد. و پدشخان قطع امید از او کرده بودند ولی با بویدن این سیب دوباره تندرستی خود را باز یافت احمد سخنان مردم را شنید فورا به دلال گفت من حاضرم چهل سکیه طلا به تو بدهم اما با همه این حرفا لازم است آزمایشی انجام دهیم آن وقت به اتفاق دلال بیماری را یافتند و بیمار که مدت‌ها گرفتار که سالت شدید ریوی بود با بویدن سیب شفا یافت و سرفه و رسید. آنگاه احمد پول را پرداخت و با خوشنودی صاحب سیب شبها بخش شد احمد در انتظار کاروان بود و تا آماده شدن کاروان جاهای دیدنی سمرقند را دید کرد مخصوصا در سرسبز و با صفای معروف را که در رای سویاد نامیده میشد. و چندی ندخانه پرآب از آن میگذشت و اعراب از لحاظ زیبایی و فراوانی آب و با باصفا با و تعدد قصرها و وفور میوه و حاصلخیزی زمین آنجا را یکی از چهار بهشت روی زمین مینامیدند سرانجام شاهزاده احمد با نخستین کاروان به راه افتاد و راهی هندوستان شد و بعد از چندین روز مسافرت و تحمل خستگی و سختی راه دراز عاقبت به آنجا رسید و به همان مسافرخانه وارد شد و به برادران خود پیوست شاهزاده علی که مدتی قبل از شاهزاده احمد به مسافرخانه وارد شده بود از شاستاد حسین که قبل از او به آنجا وارد شده بود پرسید چند وقت است که به مسافرخانه رسیده است. در پاسخ او گفت سه ماه است که از سفر خود به اینجا آمدم. با شنیدن این چنین پاسخی او گفت پس معلوم می شود به مقصد دوری نرفته بودی. شاستاد حسین گفت الان چیزی در این باره نمی گویم. همین قد بدان که من از اینجا تا محلی که به آن سفر کردم فقط سه ماه تمام در راه بودم. شاهزاده علی گفت در این صورت مدت بسیار کوتاهی در آنجا اقامت کرده‌ای؟ شاهزاده حسین پاسخ داد اشتباه می‌کنی برادر فقط در یک محل بیش از پنج یا شش ماه اقامت کردم و, و چندین ماه هم در نقاط دیگر به سر بردم شاهزاده علی پاسخ داد مگر که این راه دراز را پرواز کرده باشی وگرنه چگونه امکان دارد راهی را که سه ماه ای در چند لحظه طی کرده باشی من که نمی‌فهمم چه می‌گویی چطور انتظار داری حرفت را باور کنم؟ شاهزاده حسین پاسخ داد: من توفی میمانندی با خود آورده‌ام که هیچ توفی دیگری در جهان به پای آن نمی‌رسد. شاهزاده علی به او گفت: اگر منظورت همین قالیچه رنگ و رو رفته است، چگونه توانی چنین ادعایی بکنی؟ شاهزاده حسین گفت: منظورم همین قالیچه است. زیرا من با این قالیچه در ظرف مدت بسیار کوتاه از شهر به اینجا ام و مطمئن هستم توفیه کمیابی که تو آورده ای با آن من آورده ام فرق بسیار دارد. شهستاد علی پاسختار توفیه که من آورده جام جهان نمو نام دارد و با آن هر کجای جهان و یا هر کس را که اراده کنید در صفحه آینه آن میبینید. در همین گفت و شنور احمد به مسافرخانه وارد شد و همه ی برادران یکدیگر را در آغوش گرفتند. شاهزاده حسین که از همه برادرها